سلام به شما، امروز میخواییم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه بخش کاربردی گرامر انگلیسی مخصوصاً برای شما که درگیر زبان تخصصی هستید یعنی چطور از افعال مودال، همون مودال وربس توی ساختار مجهول استفاده کنیم بله، منابعی که داشتیم هم دقیقا به همین موضوع پرداختن هدفمون اینه که ببینیم چطور میشه جمله‌های های ساخت که توشون مثلا توانایی، امکان یا یه جور الزام وجود داره و خب قرار شد روی کن و کود هم یه تمرکز ای داشته باشیم. آره، مثلا یه جمله خیلی رایج مثل Data can be transmitted یعنی داده ها میتونن منتقل بشن. دقیقا همین ساخت داره. خب بیایید یکم بازش کنیم. اول، خیلی سریع این افعال مودال چی بودن هستن؟ ببینید، افعال مودال یه سری فعل کمکی هستن مثل can, could, may might must should um, will would اینا میان قبل از فعل اصلی و یه معنی بهش اضافه میکنن. معنیهایی مثل توانایی احتمال باید و نباید توصیه اینجور چیزا خب علی پس حالا بریم سر اصل مطلب چطور همینا رو توی ساختار مجهول استفاده کنیم نکته کلیدی و فرمول اصلیش اینه اول فعل مدال میاد، بعدش فعل بی و بعدش هم قسمت سوم فعل اصلی، یعنی past participle. مودال verb plus be plus past participle. آهان، پس برای همین بود که data can be transmitted درست در می اومد. Can که مداله، بعدش بی اومده و transmitted هم که قسمت سومه به نظر که ساده میاد. دقیقاً، اما یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا هست که گاهی راستش باعث اشتباه میشه. اونم اینه که فعل بی که بعد از مدال میاد همیشه باید شکل سادهش باشه، یعنی خود بی. او، بس یعنی نمیشه گفت مثلا دیتا can are transmitted» یا مثلا دیتا can were transmitted» اینا غلطن؟ کاملا غلطن چون آر و ور شکلهای صرف شده بی هستن بعد از مدال فل کمکی بعدی که اینجا بی هست هیچ وقت صرف نمیشه فقط و فقط شکل پایش یعنی بی عجب نکته زریفی پس حواسمون باید باشه خیلی مهمه، بخصوص توی نوشتار فنی که دقت حرف اول رو میزنه. خب، بیاین چند تا مثال دیگه هم ببینیم که از منابر بودن تا بهتر جا بیفته. مثلا این جمله sensitive data can be encrypted before transmission یعنی داده های حساس میتونن قبل از انتقال رمزنگاری بشن. اینجا کن همون معنی توانایی یا امکان رو میده. دقیقا، یعنی یکی با ماست، The server must be protected against external threats. یعنی سرور باید در برابر تهدیدهای خارجی محافظت بشه. اینجا دیگه الزام قطعیه. و با شودم مثال داشتیم. User accounts should be monitored regularly. که یعنی حساب‌های کاربری باید به طور منظم پایش بشن. این بیشتر حالت توصیه داره یا یه الزام ملایم‌تر. درسته. حالا می‌رسیم به کد. این یکی گاهی یکم گیج کننده میشه. به این جمله دقت کنید. The firewall settings could be misconfigured accidentally. ترجمه درست این جمله اینه. تنظیمات فایروال ممکن است به طور تصادفی اشتباه پیکربندی بشن. صبر کنیم ببینم. ممکن است؟ چرا؟ من فکر می کردم کود معمولا گذشته کن هست. یعنی باید ترجمه بشه می توانست اشتباه پیکربندی شود. آهان. این دقیقا همون نکته کلیدیه که خیلی رو حتی سطح بالاتر رو هم به اشتباه میندازه ببینید توی این جمله و خیلی از موارد مشابه توی متنای فنی کود اصلا برای بیان توانایی توی گذشته به کار نرفته بلکه داره احتمال یا پاسیبلیتی رو توی زمان حال یا آینده بیان میکنه معنیش خیلی شبیه می یا مایت میشه شاید یکم درجه اطمینانش پایین باشه پس یعنی وقتی توی یه راه یا گزارش فنی میخونیم، مثلا something could be damaged، منظوری نیست که قبلن میتونست آسیب ببینه. منظور اینه که این احتمال وجود داره که الان یا در آینده آسیب ببینه. درست فهمیدم؟ دقیقا همینه. تشخیص این دوتا معنی کود یعنی توانایی گذشته در مقابل احتمال در حال یا آینده فوقلاده مهمه. فکر کنید توی مستندات یه سیستم نوشته شده data could be lost، اگه شما فکر کنید منظور اینه که قبلا امکانش بوده داده از دست بره، شاید خطر رو جدی نگیرید. اما اگه بدونید منظور اینه که احتمال داره داده ها از دست برن، خب قضیه زمین آسمون فرق میکنه. راستش یه دلیل اینکه این ساختار مجهول با مدالها توی متنای فنی انقدر پرکار برده، شاید همینه که تمرکز رو میذاره روی خود کار یا فرایند نه روی فائلش، مثلا مهم اینه که داده ها میتونن منتقل بشن. اینکه کی منتقلشون میکنه شاید تو اون لحظه اولویت نباشه. نکته خیلی خوبیه دقیقا همین ماهیت غیر شخصی و تمرکز روی خود عمل یا شی باعث شده این ساختار توی زبان تخصصی خیلی رایج باشه. خب پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع بکنیم ساختار مجهول با افعال مدال، فرمولش هست فعل مدال، B+ اسم مفعول حتما یادتون باشه که B همیشه باید شکل سادش بیاد نه am, is, are, was یا were. و از همه مهمتر مراقب معنی کود باشیم چون غیر از توانایی گذشته خیلی وقتا معنی احتمال توی حال یا آینده رو میده و این رو باید از خود متن و موقعیت تشخیص داد بله و این تسلط فقط یه بحث گرامری خشک و خالی نیست برای اینکه متنای تخصصی رو دقیق بفهمیم و خدا نکرده دوچار سوء برداشت نشیم خیلی ضروریه چه وقتی دارید مستندات فنی میخونید چه وقتی دارید خودتون گزارش می نویسید فهم درست این ساختارا واقعا حیاتیه واقعا آدم رو به فکر میندازه که چطور یه تفاوت بظاهر کوچیک گرامری تونه اینقدر روی فهم مطلب تاثیر بذاره و حالا یه تمرین کوچیک ذهنی برای شما که شنونده هستید به یه فرایند فنی یا علمی که خوب میشناسید فکر کنید سعی کنید مراحلش رو با همین ساختارا توصیف کنید مثلا توی اون فرایند چه کارهایی باید انجام بشن ماست بی دان چه چیزهایی میتونن اندازه‌گیری بشن کَن بی یا چه اتفاقاتی ممکن است رخ بدن could happen یا might be observed فکر کردن به این مثال واقعی کمک میکنه. مطلب بهتر براتون جا بیفته خیلی امالی ممنون که توی این بررسی دقیق با ما همراه بودید